بسم الله الرحمن الرحیم مبایثمون در خل بود که بیش از چهار هزار روایت در رابطه با سرکه تو روایات شیعه اومده رسید مبایثمون به عرق کردن در شر یا عرق ریزش بیش از اندازه حالا باید بررسی بشه آیا این شخص مثلا قندخونش خیلی بالاست چربیای مزرخونش خیلی بالاست یا التحاباتش شدیده تصاری فهمونه یا محیط خیلی گرمه یا تحرکش خیلی زیاده پس علل زمینه ای باید بررسی بشه حالا اگر کسی مؤمن محلهایی که زیاد عرق میکنه با سرکه طبیعی سیب اینجاها رو چیکار کنه؟ مرتوب کنه. با محلول سرکه طبیعی سیب قسمت‌ها رو مرتوب کنه یا ماساژ بده. اینجا چی سبب میشه؟ هم عرقش کم بشه هم این نشه و هم تعادل میزان pHش یا اسید پوست بشه. و همچنین شاداب کننده پوست و آرام بخشه سرکه سیب نوشیدنش اگر کسی ناراحتی غیر عضوی معده نداره صبحگاهان ناشتا محلول رقیق شده سرکه سیب که دو قاشق چایخوری در یک لیوان آبه اگر بخوره ترشع رسوبات و مواد سمی رو تحریک میکنه و از بدن تصفیه میکنه یعنی بر اثر تعریق لازم نبیش از اندازه سموم جمع شده در بدن از بین میره چون اخراج سم از بدن راه های مختلفی داره گایی از طریق مو، گایی از طریق ناخونه گایی از طریق عرقه گایی از طریق ادرار بوله گایی از طریق مدفوک قاعته پس ها فهملیم؟ و گایی از طریق بازدنه تو تنفس بود. خلا تو مباحثه ما سموم جمع شده در بدن از طریق تعریق بیرون از بدن میاد. حالا حرف سنینه که عرق ریزش عادی باشه، طبیعی باشه. نه اینکه مورد خاصی نداشته باشه، نه تحرک داره، نه فعالیت جسمانی داره، همون جور شور شور عرق اونم تو چله زنمستون. حتما یا قند خونش خیلی بالاست و نوسانی یا چربی‌های مزر خونش بالاست و نوسانی یا التحاباتش شدیده باید بگردیم علت زمینهی بیماریشو پیدا کنیم بعضی افراد هستن مومنات دائما سرگیجه دارن حالا سرگیدش ببینیم کدوم مدل پنجاه نو سرگیجه ببینیم کدومشه تو بحثای تشنج و سرگیجه و سردرباک تا شهست نوه آیا مثلا این سرگیجش چربیش خیلی بالاست یا چربی مفیدش خیلی پایینه یا قند خونش خیلی بالاست یا قند خونش زیر هفتاده خونش بالای شونزه است یا فشارخونش زیر نهه. خب اگر علت زمینه ای دوشت تو بحث سرگیجه اما علت پیدا کن دعما کن سرگیجش خوب میشه اما اگر گشتیم و تحقیق کردیم پیش دکترهای مختلف هم رفتیم دلیلی برای سرگیجه مداومش پیدا نکرد حالا اینجا اگر سرکه سیب رقیق شده رو بنوشه به مدت چار الا شیش هفته یا به همراه وعده های قضایش یا حد اقل صبح ها و شب ها میل کنه هم جمرانه چون گایی سرگیجه به خاطر کارش مواده مدنی بدنه یا گایی به خاطر قرزت خون یا گردش خون ضعیفه. حالا اصل ردیق شده که تو جیره غذاییش باشه یا هر صبح و شب بخونه و امون ترتیبی که قبلا گفتم این جبران کننده کمبود مواد معدنیه تسریع گردش خون میده شاداب کننده پوستم هست از یا سوزش معده دارن یا سوزش سردل دارن باید ببینه آیا بدخوری کرده یا نه؟ آیا غذا نفخ نفاخ زیاد میخوره یا نه یا نوشیدنی های نفاخ مثل نوشابه های گازدار دوغ گازدار پوست حبوبات مثل از اینا زیاد مین او4 داره سیلیس داره سیلیس نفاخ. خب اینا رو که ترککنه نفخش خوب میشه. یه بار دیگه نه. این سرسوزه معده که داره به خاطر بدخوریه. مثلا فسفودها یا غذاهای صنعتی میخوره. سوسیس، کالباس، همبرگر میخوره. و مانند اینها. خب اینجا. سوزش معده به خاطر کمبود جوهر نمک در شیره مده کمبود جوهر نمک در شیره معده. اغلب به این دلیله نه به دلیل نارسائی گیرنده اش دو در جدار مده است که مسئول تحریک ترشوه اسید مده است. که اسید کلوریدریک باشه پس ترشوه بیش از حد اسید معده قالبا دلیل سرسوزه معده نیست این جوهر نمک که در شیره معده است اگر کم بود باشه سسوزای معده داره این جوهر نمک هم در کنار آنزیم پپسینه در کنار آنزیم پپسینه بیش از هر چیزی وظیفش چیه تجزیه پروتئین پروتئین حیوانی یا پروتئین گیاهی که خوردیا مثلا باید تجزیه بشه اینجا جوهر نمک به اضافه آنزیم پپسین تجزیه پروتئینی میکنه که مصرف کردین کسانی که معده هاشون جوهر نمک کم تولید میکنه وقتی پروتئین زیاد می‌خورن مثلا پروتئین حیوانی مخصوصا از سوزش معده رنج می‌برن سرکه در کنار جوهر نمک میتونه به نرم شدن گوشت کمک کنه پروتین حیوانی و اول و آخر غذا گفتیم مسمل خل نکه قاش و چای خودی چی بخون؟ سرکه طبیعی انگور اسکری یا سرکه طبیعی سیب بخور. تا از سوزش معده جلوگیری بشه و کمبود جوهر نمک همیشه سبب سرسوزه معده نیست بلکه اینکه غالبا اینطوره و باعث سوزش معده نمیشه سوزش شدید معده بیش از هر چیزی نشانه یک بیماری در معده است آیا زخم معده داره یا زخم اسن عشر که بعد از معده خروجی دریچه پیلور معده است باید اونجا با قول امروز یک اندوسکوپیک بشه ببینیم زخم معده یا زخم اسن عشر داره یا نه تو معاینه بالینی بشه تو تب تشخیصی آزمایشگاهی آزمایش مدفوع بده اگر آزمایش مدفوعش قهوه‌ای پررنگ یا غیری سیاه رنگ بود مدفوع این مریض نشه زخم معده یا اثنا عشر داره درست شد معاملات یه توسط پزشک باید درمان بشه که اونام قبلاها توضیحاشو دادن اصلا فهمیدید که بعد از قضا راه بره هنگام قضا خوردن نیم ساعت وقت بگذاره قضا خوب بجوه بعد اینکه بعد از غذا راه رفت، حالا یک دونه مثلا سیب بخوره، اگر یه بوسه تنف داره یه استکان آب سیب بخوره و دو و تو بحث زخم معده و استعشار مملای شیرین بیان یا شیرینوش و اگر معده و رودش استرسی باشه پودر پوست میوه بلوط معده و روده استرسی چم چی میشه؟ خوب میشه. اینا رو عمل قبل گفتم. اگر آفتاب زدگی باشه در مریض محلهای سوخته و آفتاب زدیگی با احتیاط کامل با سرکه سیب رقیق شده ماساژ میدیم. کنیم دو قاشق چای خواهی توی یه لیوان آب. یا دستمال آغاشته به سرکه سیب رو روش همجور میزنیم. یک حمام کامل ولرم با دو فنجان آب سرکه سیب در وان حمام. دمای وان آب ولرم باشه. زیر چل درجه. سرکه سیب هم اثر خک کنندگی داره. هم پوستت خنک میشه هم ضد عفونی کننده سطح پوست هم مسکن التهاب پوستی. اگر کسی اضافه وزن داره غذاهای چرب و چلیس و قندهای شیمیایی و نوشابه گازدار و کافئین زیاد اینها رو نخور معومنا پنج درصد خوب شد. پنجه درصد دیگه بعد هر قضا یه استکان آب سیب تازه بخوره از جمله صبح و شب یا بین روز اسونه محلول رقیق شده سرکه سیب بخوره مثلا یه قاشق مرب بخوری سرکه سیب در یه لیوان آب یکی وسط روز که هم عصرونه میخوره همینا ظرف دو ماه 15 کیلو کم میکنه یادا چیزای دیگه که اینا گفتن به اینا کار نداریم تو بحث سوخت ها تو بحث گاز ها، قسمت سوختگی یا گاز گرفتگی ها یه ضدعفونی قوی چی همجون سرکه سیبه یعنی ا تطور یاد بهتر عمل میکنه تصافهم بودیم. یا بخواید شستشو بدیم رقیقش کنیم با جو که بله هم شده وقیقش کنی مؤمنات بعد محل زخم یا جراحت یا گاز گازگرفتگی شستشو بدی از آب مقطر بهتره هم کار آب مقطر میکنه و هم کار بتادین دو منظوره اگر قلیزتش بالا براه از ساولان قوی تر تو بحث ضد باکتریایی بودن هم خونک کننده هم ضد عفونی کننده اختلالات گوارشی کسا که شام دیر میخورن و سنگین میخورن اینا دچار اختلالات گوارشی میشن پوده میکنه تخمه میکنه ترشا میکنه صبح میشه فضای حلقش تلخه خب اینا حتما باید بعدش محلول آب سرکه بخورن. که کمک کنه به هضم غذا و درصد باکتری های مزره معده و روده کاهش پیدا کنه و بوی تأفون ایجاد نشه و باکتری های تخمیل شده در روده کم بشه چون وقتی که بوی تأفون شدید بشه توی مدفوع شخص علامت و نشانه باکتری های پوسیده و آفونی شده در مسیر روده است سموم شده در روده باعث مسمومیت پنهان روده و سپس مسمومیت تدریجی بدن می شود و مواد دستمی از طریق خون به تمام اندام ها میرسه. اگر این ادامه پیدا کنه مثل قالب مردم در آخر زمان. شام دیر میخورن، شامشون هم سنگین میخورن. ازا طول عامرها کاهش پیدا کرده، اختلالات در خواب افزایش پیدا کرده و قرصای خواباور شیمیایی مد شده و میخورن. مقصر بدخوری شونه. سیب از عفونت روده جلوگیری میکنه باکتری های پوسیده و عفونی روده رو اولین میبره مراقب محیط رودس به عمل دفع سم موجود در کبد کمک میکنه جیگرسیان حرکت کرمانند روده حرکات دودی شکل روده بزرگ رو تحریک میکنه نمیگذاره مندگاری فضولات در رکتوم یا رست روده بشه اینا هم بمونه رفع عفونت روده اگر یک تا سه بار در روز نوشیدنی اسکی اس استیب بنوشیم و همون رقیق شده توی لیوان آب عفونت روده اب به میره نمیخواد آنتیبیوتیک بغض آنتی بیوتیک بخورید نظیر عفونت باکتریایی که در هلیکو باکتری در معده موجب باز لازم نیست چک خوش کام بخورید ساعت پشت سره هم هر ساعت یه قاشق پلو خوری ماست شیرین کم چرب هیلیکوباکتری معدت هم عبین میره به علاقه بهتر از این اقدامات انجام شد شام دیر نخوری چقدر تروایات شیعه داریم شام زود بخور ولی سبک حتی از امام رضا علیه السلام هست توی رساله زهبی تبر رزا سه بعده غذای اصلی رو همیشه در یک زمان مشخص بخوریم دین اینطوری نمیکن دین می فرماید بلعشی یا میگه بهشتی زندگی کن تا تو بهش بری دو بعد غذای استید یکی صبح زود یکی اول شد بلعشی یا والعبکار بعد این بینش میان وعده های غذایی مخصوصا برای سنین سی و سال به بالا بله اگر کسی سوء تغذیه داره یا پونزه 20 کیلو طب قدش و سنش وزن کم داره یعنی لاغری مفرد داره یا سوی تغذیه شدید داره یا مادر ای که بیار شدید داره در همه این موارد باید بین 6 تا 8 وعده غذا بخوره سه وعده غذای اصلی بقیهش قضای چی؟ ریزمو قضی یعنی میان وعده های باید بخوره تا جبران این سوی تغذیه خب؟ یا جبران این لاغری مفرد هزار، یا جبران این سوء تغذیه بشه یا جبران وزنی جنین در رحم بشه چون مادر حاملست بیارش شدید نه مادر آسیب ببینه نه جنین که جنین سخت نشه قبلا توضیح دارم پس به صورت کلی بگی همه افراد سه بعد قضایی اصلی بخونن این حرفش اشتباهه حتی اگر پرفسور هلمیست باشه اشتباه فهمته تو صفحه 115 اینجا باز اشتباه دومی که فرموده میگه شام رو گای کاملا هضم این هم اشتباهه شام بخور اما حجم و وزن غذا رو کم کن دوم شام بخور اول شب بخور سوم شام بخور بعد از شامت راه برو و سپس کمک کننده به هضم غذا بخور مثل سیب درختی مثل خورما مثل خربوزه رسیده مثل انار شیری پس ها فهمودی؟ نه همه کمک میکنن به هزم غذا. پس و زود بخور کم بخور اونایی که اضافه دارن ها. یا نارحتی قلبی اروغی یا سکت های مغزی ناقص کردن شام بخور زود بخور حجم و وزنش کم باشه بعد از شام راه برو بعد کمک کننده به هضم غذا بخور که تو روایات شیست تذکر دادم پس این فرمایش بعدی هلمیس هم اشتباهه که میگه شام رو کاملا گایی حرص کن یا فقط یه تک نان بخور یه حرفش خوبه اما تمامه. و گفتی چرا؟ چون هم دابونش کرد میگه یا یه تک نان توست بخور و کمی چای بخور فاطعه طرف خوندیم اگه گفته چرا؟ <تصفيق> چون کافئین زیاد موجود در چای قهوه شکلات، کاکوونس اسکافه، آهن بدن رو کم میکنه این میخواسته اضافه برزشی درست کنه مبتلاش کرده به بیماری فقر آهن آنمی فقر آهن پس اینجا سه تا فرمایشش اشتباهه توی پراوایاتشیه که خدمتون بگین چیه؟ سید و شراب فر دنیا و الاخره الماء آب یه دنیه سالمه هیچ مایه ای جایگزین نمیشه بعد مستحب دوباره چی چیه مومنه های که لازم و ضروریه بدن. چارده فایده دن یکی دیگه که مستحبه چیه ما الفاتر آب جوشیده به نقطه جوش برسه پنی دیگه به جوشه بعد خاموش کنی و لنکه شد بخوری این تو شرایط عادی تو شرایط بحرانی بود وبا تاعون تیفوس زلزله، بمبارون سیل تو شرایط غیر عادی بود آب به نقطه جوش برسه 20 دقیقه به جوشه بعد خاموشش کن ولنکه شد بخور بقیه مایه رو در پوش بذار سربسته باشه گرفتین معاملات چی گفتم؟ این دوتا هیچ مایه دیگه هم جایگزین این دوتا نمیشه حتی چای پس هم که انگلیسی ها شایه کرن هفتاد ساله یه حرفشون نتمامه یکی هم بوی نرمشیشه هم داره یعنی مریض کن و دکتری کن این تز پزشکی کاپیتالیست انگلیسی و آمریکایی و ایوریوریه با عرض مذره در انگلیسی و آمریکایی ها یعنی این کارتون این همه جون شون دارین تجارت دارون میکنین و تجارت ابزار پزشکی میکنین تبابت خبری نیست اگر کسی اولادش یا فامیلاش یا همکارش اسهال خفیف داره. میتونی اسهال خفیف رو با سرکه طبیعی رقیق شده درمان کنید. میتونه یک دونه رو با پیارش با توفالش بخوره. میتونه کمک به هضم قضاش کنه و مزاجش رو جمع کنه. مثلا حویج رو با توفالش با پیارش بخوره. میتونه یک انار شیرین بخوره قابض میتونه با حسش به جوه خفیفش خوب میشه یک دونا کافیه این هم مومنه حالا تو بحث سرکه و سرکه رقیق شده تو آب به جای پودر او اس پودر او میدم اس میدن که املاح داره و اینا املاحش کم نشه آب بدنش هم کم نشه محلول آب سرکه یا رقیق شده میدی هم املاحش تامین میشه از پتاسیم و منیزیم و بروم این حرفو هم مؤمنا آب بدنش تأمین میشه هم جلوی اسهال خفیف گرفته میشه البته اگر مریض اسهالش بیش از یکی دو روز طول کشید حتما باید پیش یک متخصص های عفونی ببرید که ببینیم این بیماری زمینه ای داره از ایس های مختلف ویروسی یا باکتریایی بررسی یا پیش یه متخصص دستگاه گوارش ببرید شاید یه بیماری زمینه‌ای داره به نام سندروم روده تحریک پذیر همیشه یوبس نیست بلکه نوع دوبا میشه. همیشه اسهال داره. تصال خواهم بودیم؟ حالا اونجا داروسیه گفتیم پنج الا چارده عدد سنجد بخوریم. سندروم روده تحریک بزیر به نوع دوم که همیشه شکم روش داره مومن ها خوب میشه اگر کسی یوبوسط مزمن داره اکس این اگر کسی یوبوسط مزمن داره هر چند روز یک بار میره قرار داره صدام مثلا یوبوسط مزمن داره. اینجا باید چیکار کنیم مومن اینجا فلوس شبیه معمن خیار میمونه اما بلندتره و پوست روش هم قهوهه سه تا ده سانیم متر سه تا ده سانتی مغز فلولوس رو مغز فلولوس کرم قهوه ای باز شبیه اطلای رنگ. مغز فروس سه تا ده سانیم مت فلوس یک گیاه ها یک گیاه سه تا ده سانیم متر فلولوس مغزش خالی میکن در سه روز یا سه بعده تو آفیوش بدم هم بزن محضه خروز رو هر نوع یبوستی رو حتی یبوستهای مزمن رو درمان به سه دیگه از این قرص‌های مختلفی که التهاب روده میاره مثل سیلکس یا سنالاکس که کارخونهی از داروخونهی دارو هست بی نیاز میشه این هم مؤمنم آن حالا اگر کسی مسهل طبیعی بخواد انگور که ملینه حالا با حسش به این مسهل طبیعی گرچه چه بادیش هم بادیشم بادیش هم خوب میشه چه به نوع داخلی باشه چه به نوع خارجی این هم مومن همال این مطالب بحث های زیگیل و دومل این هم که قبلا توضیح دادم و تکرار نمی کنن. مال زخما که با سرکه رقیق سیب باشه یا سرکه خالص تمیز کنیم زخم رو زده و, و بهبود میکنه و تصریع در درمان زخم اینا هم که قبلا گفتم اینا همه تکراریه مراقبت از دندان و لثه و اینا هم که گفتم و همچنین لوزا و پاکسازی از پلاک دندان و جرم دندان و افونت لوزای جانبی و افونت یا تورم لوزه سوم خلت چسبنده پشت حلق و کیپ بینی و میدنم که همه قبلا گفتم مهمنا که باز اینجا تکرار کرده حالا مهمنا اونه که قبل گفتم که اینجا تکرار کرده از خارج از کتاب هشت چیز اینجا تذکر دادم الان بر پاکسازی از اینها بدبوعی فضای دهان و حلق و بدبوئی پوست بدن و عرق هم از بین بره درست مؤمنان هر چی یادداشت کنیم یک محلول آب سرکی سیب یا آب سرکه انگوری مزمزه کنه غرغره کنه بریزه بیرون وقتی که آفت دهان داره وقتی که لوزاش چرکی آنژین گلو داره وقتی که تورم لوزه سوم یا لوزه‌های جانبیش افونیه و سفیدک بسته، وقتی که بار زبان داره، کوره رو زبان بسته، وقتی که دونهای چرکی روی لسه ها داره، یا خون روش لسه، یا تبرم لسه، یا افتادگی لسه داره، در همه این موارد که قبلا گفتم مزمزه کنه، قرغره کنه، بریز بیرون. این محلول آب سرکر. رو. یا خلت چسبنده، مثلا این حرف. بعدش که اینا تمیز شد حالا میتونه محلول آب رو بخوره تصال فهم شماره دو یک لیوان آب که در آن یک قاشق مربخوری سرکه سیب محلول باشه همزده باشه اینو میتونه بخوره خیلی فواید داره هم همین درمان بوی بد پوست و بدن بوی بد عرب درمان بوی بد دهان سوام به پوست سر و پوست بدن زیر بقل ها پایین تنه محلول سرکه به چهارم پودر حنا قبل از حمام و پودر زمه بعد از حمام بعضیش قبل گفتم پنجم هفته چند بار پودر جوشیرین تو کپشش بریزه همچنین کف پا لای انگشت های پا رو با سرکه سیب چکار کنه زده افونی کنه که بیماری های قارچی پوستی و لای انگشت ها نگیره در زمین عرق کف پا چی بشه کم بشه از بدگوری هم در بید. و بگذارم جو تا خوشش درمان قارچ پوستی تا پا و پوستی دیگه بافت پوست و گوش مفیده شیشام قبل از هر وضو کف پا را شسته و لای انگشتان را با آب بشوید یه مستحبات قبل از وضوه دیگه سپس خوشکشم بکنید چون تو منطقه گرم، تاریک، مرتوب منطقه گرم، تاریک، مرتوب هم رشد باکتریا میشه هم رشد قارچا حالا انگشت انگشتای پا یا کف پا که همهش رو زمینه یا تو جورابی یا تو کفشه خب منطقه تاریک، گرم، مرتوب رشد باکتریا و قارچا زیاده حالا چه داخل بدن باشه مثل روده و معده و اینه چه مومن چی؟ کفه پا با باشه لای انگشت ها که توضیح دارن چه تو قسمت هم؟ حلق باشه جای لوزه ها و ابتدای نای و ابتدای حنجره و ابتدای مری و پشت زبانک و دو تا لهاد دو گوش حلق و یعنی آدنوید ها خب اینجا هم فضای گرم و چی؟ و تاریخ و مرتوبه اینجا جاهایی که باکتری باکتریا یا قارچه زیاده حالا میتونیم با محلول آب سرکه و بعضی چیزای دیگه که آنتیبیوتیک طبیعیه مثل آب سیب طبیعی مثل آب شلغم طبیعی مثل عسل رقیق شده اینا میتونیم شبا کنید اینجا همه رو زدع و فونی کنیم این مطلب ششم مطلب هفتم گلبرگ گل محمدی رو و گل سرخ آتشی رو با آب بخوری یا با گلاب. گلبرگ گل محمدی و گلبرگ گل سرخ آتشی که فرانسا میگن تیروس این رو با آب بخوری یا با گلاب بخوری تصال این چند فایده داره مؤمنان علاوه برای این که ملینه مصهله این حرفا حالا بحث خودمون عرقاتمون و پوست بدنتون خوش بومیش هشتم خوردن گلاب طبیعی مال مالقمسر کاشان معروف از قدیم و جدید روزی یک استکان که مسهل و عرق بدن. بیماری نران حرکتی. موتور نیرون گیستیس است. راهنمای پزشکی خانواده 29 جلد 12 صفحات 123, 124, 125. بیماری های مغزه این بیماری نران حرکتی عامل جنتیکی داره در مردان شاید تره. مخصوصاً در سنین 40 سالگی به بالا. حدود ده درصد مواردش هم در خانواده شایع پدر میگیره، پسر میگیره، خواهر میگیره. علائم بیماری نورون حرکتی ضعف شدید، لاغری مفرد در مدت چند ماه. دوم حرکات انقبازی در عضلات. سوم سفتی و کرامپ کرامپ عزلانی چهارم سختی در انجام حرکات کششی مثلا میخواد یک چیزی رو برداره مشکل یا یه چیزی رو به چرخونه مثلا کلید رو تو در میخواد به چرخونه نمیتونه تصال فرموندین آقا یا سر یه بطری یا مثلا واس کن یا سر یه شیشه یا پیچی رو واس در صورت عدم درمان بیماری نران حرکتی اثرات وضعی سوش بیشتر میشه پنجم کشیدن یک پا به روی زمین یا تمایل به لغزش و سرخوردن هنگام راه رفتن ششم دشواری از پله ها بالا و پایین رفتن با اینکه فاصله پلو هم خیلی استاندارد باشه یعنی مثلا 10 سانتیمت 15 سانتیمت خیلی خیلی 20 سانتیمت باشه خیلی کوتاه کوتاه باشه همین هم نیمتونه پاچه برداره بذاره یا سندلی های همینتون نمیتونه نیمتونه بشینه هفتون درهم و برهم گویی مشکل تکلم گرفتگی صدا اشکال در بردعه خب ببین؟ این دو تای آخری که گفتم، گاهی اشتباه میشه با پرکاری تیرایی که شخص حال نداره بشینه رو صندلی ماشین حت. یا این دومی دو که آخر گفتم، اشکال در بلع، گاهی ممکنه چی باشه اونجا؟ سکته خفیف باشه، به دلیل لخته خون در مغز. به خاطر اشکال در بلع غذا، گاهی بعضی از های غذا میره توریش. و دوچار عفونت‌های های مکرر ریه میشه یعنی دوچار بیماری پنومی میشه عفونت ریه عاد کننده یعنی بیماری پنومی مطلب دهم. این سرش مومنانیست میافته رو به جلو چرا؟ چون عضلات گردن و نگه دارنده سر میشه؟ شل میشه حالت الاستیکش از دست میده دوران پیشرفته این بیماری میگم بیماری نران حرکتی دهم ده افتادن سر به طرف جلو به خاطر شلی عضلات گرد یازدهم به خاطر ضعف عضلات تنفسی از این به بعد بیمار تنفسش دشوار میشه به سختی نفس میکشه دردم و بازدم تو پزشکی جدید تشخیص بیماری به سه چیز یکی الکترومیوگرافی جهت کشف کاهش فعالیت الکتریکی عضلات، یکی هم امر آی و سی تی اسکن از مغز میگیرم دستگاه پیشرفته پیت یا پت که سه سال این دانشگاه تهران هم آورده بیمارستانش تو آلمان هم از قبل بود کشور آلمان این دوتای آخر رو او چی؟ امر آی و سی اسکن اسکم به خاطر تشخیص بیماری های مانند وجود تومور یا اسپاندیلیت اسپاندیلیت در قسمت گردن تومور گردنی که علائمی شبیه بیماری نیرون حرکتی دارن حالا در پزشکی جدید درمان بیماری به سه چیز یک داروشیمیایی جدیده که دارو جهت درمان بیماری نران حرکتی مثل ریلو ریلوزل این دارو جدید در درمان بیماری نران حرکتی. بعدم گفتیم سی تی از کن یا پیت یا پپ با این دستگاه با تصویب برداری میکنی یا MRI، آی چون که نوستانات بود یکی شماره هفت یکی شماره هشت نوسانات خلقی استراب افسردی اینا تصویب تو پزشکی جدید داروهای ضد افسردگی، و یکی بحث پنومی بود مومنا افونت مکرر ریه ها چون مشکل بل داشتیه در آنتی آنتیبیوتیک هم میدن پس پزشکی جدید داروهای ضد افسردگی و استراب و همچنین داروهای آنتیویتیک ضد عفونت میدن. این کار پزشکی جدید. حالا این نظر طب گیاهی و طب مکمه و طب سنتی و همچنین از نظر طب المعصومین و طب اسلامی. ما میتونیم آیا این بیماری نران حرکتی رو دعمان کنیم؟ بله عمو جم. زیایی گوید هر روز صبح عسل رقیق شده وسط روز سرکه طبیعی سیب رقیق شده بخاشم خوری در یه قاشق مرباخوری در لیوان آب عصرانه گل بهار نارنج با عسل رقیق شده در آبجوش جوش بلن. اول مغرب آب شلقم مخلوط شده محلول شده با اصل. آخر شب ها بعد از شام قبل خوابش آب سیب مخلوط شده با اصل. تمام این چیزایی که مؤمن ها تقویت سیستم دفاعی بدن و تقویت نیرون های عصبی و پیشگیری و درمان از مردگی سلول های عصبی و نیرون های عصبیه که جلوی پیشرفت بیماری بگیریم آیا می تواند گیاه درواش یا شیرینک یا قرص گیاهی اسکادور یا اسکادور انگلیسی آیا می تواند جلوی پیشرفت سلول های بگیره یحتمل؟ علم یحتمل که در این بیماری نران حرکتی موثر باشه تو جلوگیری از پیشرفت بیماری یحتمل از باب احتمال علمی چیزای دیگه هستن مؤمنا که تو طب گیاهی طب مکمل الترناتیو اینها چیان مؤمنا عسل آرامش بخش تقویت اعصاب اثر گذار حرفمون گم نکنید کل حرفمون یک کلمش خورد به دست سرکیستی استی یادتونه گفتم محلول رقیق شده سرکیستی؟